الحمد لله رب العالمين، صل الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابن القاسم المستحب محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خدا این میراد ولی اصر امام زمان سلامات الله تعالی علیکم و همه شما و همه جهان اسلام جهان بشریت تبدیل میکنیم از خدا میکنیم به ما توپیق یاری حضرت و در رکاب و حضرت بودن چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور انایت بفرماید الروی <سؤال> زبون رو با آیه خیری میگه. و اللّه أرسل رسوله بالحُدّة دین الحق لِيُظهره على الدين كلّه ولو كره الكافرون يا ولو كره المشركون آزمی کنم. حب. ادّرین جلسه یکوتها های کلی نگاه فقیه مقام معظم رهبری به فرق اجتماعی اشاره میکنه، بحث ما این چارچوب کلی، چارچوب کلی نگاه مقام معظم رهبری به فقیه اجتماعی. چین رو در زمینه چند اصل تبیین میکنه اصل اول اینکه همه ادیان الهی و بهلاخص دین اسلام برای اداره جامعه آمده و مخاطب در ادیان الهی جامعه است یا یوحناص حتی یا در عنوان بسیاری از خطابات قرآنی آمده مخاطب جامعه است در اعمال عبادی در همه اعمال عبادی این اجتماعی بودن اسلام خودشون جلوه شد چه در نماز چه در روزه چه در حج، زکات، خمس همه اعمال ابدی. و اینکه اعمال اعمال ابدی هن، منظورم که اجتماعی بوده نه اسلام کوتونه شد. همون نماز برا، پس این نماز جماعت، یک مستحب عادی نیست. یک مستحب میشه بیش، بیش نشی، نشی. این طور نیه. این شکل نماد جماعتی که بین ما رایج شده در نتیجه حاکمیت طولانی تاغوت هاست بر جوامع اسلامی که فرهنگ رو بر مبنای اسلام تنظیم نکردن فرهنگ اجتماعی اگه فرهنگ اجتماعی ما اسلامی بود همه مردم با تو نماد جماعت حضور پیدا کنند الا من لا هو عدران الا من لا هو الا الا بسبب از باهم. حالا کسی کاری برش پیش میاد علتی دارد بیمار میشه و خیلی کار خیلی مهمی که فوتیست اگر نرود دنبال رو مونگرد و اینما باید نماد اون تو مسجد بود بشه یعنی مسجد رو بعضه نکردند که حالا اونایی که کار ندارند برند تو مسجد جماع شد ولی بیکارا بعضه نشده، برای مردم بعضه ما الان مدده رو تقریبا تبدیل کردیم به کسانی که کار ندارن. حتی اونایی که کار دارن که میخوان بیا نماز بخونند میگیم به امام چون وقت زهره خیلی تون نماز رو ببون این رو برسن کارش نکنه از کارشون باز بمونند و اما نماز جمعه فحدت فرا عرج نماز جمعه تو این قوم خود ما می‌دونی که اطراف نماز جمعه حتی مغازه‌ها وقت نماز جمعه بازه. همینج مردمون کار کارو خودشون میکنن. یه عده‌ای که با میشن بیان خیلی انگیزه دارن. یا به خاطر اینکه این عمل رو عمل خیلی مستحب به ثواب داری میدونه. به عنوان یک ثواب خیلی خیلی بالا میون پیشات بیان نماز جمعه. یا بعضی‌ها خب به نماز جمعه کاری دیگه ندارن دیگه ارا بیان نماز جمعه قرار این نیست یعنی این چیزی که وضع الهو سلات الجماعه یا قضع اطلاهو سلات الجماعه قضع اطلاهو سلات الجماعه قضع الهو هر که مساجد این نیست در روایت داریم که رابی این مضمون خدایسته که مساجد اصلا پاتوق مؤمنه یعنی مؤمنون که بخند دوره هم جمع بشن جمع یعنی این فرهنگ که مثلا مردم وقتی میخوان همنیگر رو بیانند و هم صحبت کنن تو قربه ها جمع میشه یا میانند تو پارک ها جمع میشه پارک خوب خوبه اتفاقا شده ها مستحب باشه چون ما در, روا... در, روا... در روایت داره که نزعه یعنی گردش کردن تفریح مستحب بفی نفسه منطقا محل اجتماع مردم که دوره هم میخوان جمع بشن حرفاشون رو با هم میدارم ولی مثلا مسجد با همیشه باز باشه این که ما میگیم مسجد خیلی ناراحت میشم وقتی اینکه قبل از ظهر مثلا یه نیم ساعت یا کم تا مثلا مسجد باز میکنن رو که خوندن مسجد میبندن قفلش میکنن غالبا میگه بریم بیرون حتی <تصحیح> که شب باشه چراغ رو خاموشو و این نیست مست مسجد همیشه باز باشه کسی میخواد همیشه مردم باید در مراود با مسجد باشن خواهی که از کارهای اصلی مسجد هم این از که نماد جماعت درش اقوامه میشه اونتها مردم درسشون بحثشون کارهاشون همدیه رو میخوان ملاقات کنن با همدیه قرار میخوان بگذلن تو مسجد قرار رو بگذلن مسجد رو همیشه باشه این همه آدم تو خونه ها تلویزیون نگاه میکنن خود تلویزیون تماشا بکنن اما وقتی بخشی هم بیان قرآن بخنن بخشی هم بیان کتاب مطالعه با آداب اسلامی آشنا بشن تو کلاس. ها اینا با تو مسائل باید مسجد باز میشه همش باید مسجد باز میشه مگر وقت خیلی خاصی که داشته استراحت شبانه است رو این مسجدون باز باشه. مسجده نگذاشتن که بسن. خلاصه ما دین ما دین عشق از نمازش کرده تا روزش تا هر همین صلوات ایلی که مقرر کرده تا حجش، تا... حالا خلاصه نما شریعت ما و شریعت اجتماعی است. ما که نماز که می کنیم در سوری حمد که فاتحه تول کتاب در هر نماز فریزه ای واجبه است بلکه در هر نمازی یا که نعبد و یا که نستعید. ما خودمونو جز از یک مجموعه می دانیم که همه با هم داریم کتاب می کنیم خدایا ما تو را پرستیم نه من ترا می پرستیم. ما اندوکنام یا یکر استعین درص روابط ما رخم. ما هستیم خب پس نگاه اسلام نگاه فقه اسلامی به انسان نگاه فردی نیست اساساً نگاهی است به نوعی یک بخش از چی از یک مجموعه ها هستند که اسلام برای اینها آمده لذا رسول هم برای این مردم آمده اصلا اینکه کلمه رسول یح الناس اننی رسول الله علكم جميعا الذي وگو کوستماات من فرستاده خدا به سوی شما مردمم همه مردم پس رسول فرستاده خدا به کیست به مردمه به جا است بله با افراد هم کار میکنه اون تا افراد به بخشید بخشی این کیان اجتماعی از این ناد اجتماع این اصل, اصل حالاته که ما بدانیم دین ما دین اجتماعیست و همه تعلیم دین ما تعلیم اجتماعی هست همه اجتماعی هن. حتی اونا که فردیه فردی هست فردی که در زمن جامعه زندگی می کند مدد نظر این یکی هست اصل. اصل دوبار این که این جامعه باید نظم پیدا کند این اصل, دو. اصل فقه اصل فقه ما یعنی چی فقه فقه ما یعنی فقه ما یعنی مجموعه دستوراتی که رفتارهای جامعه رو نظم می بخشد فقه یعنی نظام امر نهی ما در فقه ما چه می درباره احکام تعریف فقه من چیه؟ فقمندیه ولقب بالاحکام الشریعیه البریه حکم کی میگیم یعنی چی؟ ما اگر جامعه باشیم حکمی نداریم جامعه یعنی حکم حکم یعنی یک فرمان فرمان فرمان یکی فرمان فرمان فرمان لواص این فرمان فرمان لواص فرمان لواص یکیه فرمان جامعه است هر جامعه حکم داریم یعنی حاکمی داریم حاکمی که داریم این جامعه ای داریم که این حاکم حاکم اون جامعه. اصفه فقه همون فقه اجتماعی فقه همون فقه اجتماعی است این به این معنا نیست که تو فقه احکام فردی نداریم و داریم بلکه این احکام فردی برای نظم بخشیدن به به این کیان اجتماعی آمده حسب نظر ما فقه ما فقه است که برای نظم بخشیه به جامعه و ایجاد یک جامعه منظم نظم نظم که میگوییم این بازم این مطلب مهم مهمه ما که میگیم نظم ما که میگیم جامعه منظم مرادمون از نظم همین چیزیه که ما از اون به امر و نهی الهی تعبیر میکنیم یعنی در قالب امر و نحی الهی این جامعه نظم پیدا کرد امر و نحی الهی چیه همین چیزیه که ماش به اسلام تعبیر اسلام یعنی مجموعه همین امر و نهی الهی البته پایه های اعتقادی هم داره بر اساس این پایه های اعتقادی بر اساس این پایه های اعتقادی میاد چی میشه؟ میاد یک نظام امر نهی شکل میگیره. باید اون نظام اعتقادی باشه تا معلوم باشه کی باید فرمان روا باشه و نسبت به اون فرمان روا ما چه وزیفه ای داریم ها خب پایه های کار از دیر زاخت کار اقاعدم مثل اقاعدم هم همی همین. ما خداشناسیمون با خداشناسی غربی ها فرق میکنه ما خداشناسیمون با خداشناسی لیبرال ها با خداشناسی لایک ها با خداشناسی ارثووداکس شما سکولاریزم فرق داره ممکن سکولار ها هم خدا رو بشناسن خدا رو قبول داشته باشن ممکن بعضی از لایک ها خدا رو قبول نشته باشن منتها اون خدایی که اون قبول داره با خدا که ما قبول داریم فرق خدایی رو که ما تو اسلام تعریف میکنیم و قرآن ما تعریف میکنه خدای حاکمه، خدای فرمان رواز خدایی نیست که فقط و فقط کارش آفرینش باشه، تنها آفرینش کار خدا نیست حالا چه آفرینش ابتدایی چه آفرینش استمراری؟ البته اینجا می است که بینه با اونها وجود ده که ما اولا در حد اون آفرینش آفرینشگری خدا هم بازم نگاه ما با نگاه اونا متفاوته ما آفرینشگری خدا آفرینشگری مستمر نافذ همیشه همیشگی جامع شامل، فراگیر میدنیم آفرینشگری رو ولی گذشته از مسئله آفرینشگری ما اصلا خدا رو تنها آفرینشگر نمیدانیم آفریننده نمیدانیم علاوه بر آفرینندهی او رو فرمان روا میدانیم من ربکم الله من لذی خلق السماوات بالعرض پی ستت این خداست ثم تو مستوی عدل عرش على عدل عرش گفتیم عرش اصلا در محبوم عرش محبوم عرش کنایی از حاکمیت استوی عدل عرش محتمی ها تو تو فارسی مثلا به مرکز حاکمیت میگیم پای تخت پای تخت پای تخت, پای تخت بود پای تخت که تخت نداریم کنه تو همه ایت بگردی یه ای جایی که مثلا تختی باشد حاکم اونجا بینشند که نبوده که پای تخت. که میگیم تخت حس یقینا بیا چی از مرکزیت حاکمیت دو واژه در قران کریم هست اینا رو خوب توجه بفرمایید یکی عرش یکی کرسی که آیه تو کرسی هم اومده این همه اهتمام با آیه الکرسی چون اصلا آیه الکرسی تبینه این حاکمیت الهی ده لا اله الا الله هو لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السموات وما في الارض من اونا این حاکمیست که آلم احاته داره وسع کرسی و کرسی گفته میشه کرسی کنایی از قلم رو حاکمیت قلم رو حاکمیت این کرسی ها این قلم و وسع کرسی و گاهی اشاره به این قلم رو گاهی اشاره به خود مرکزیت حاکمیته هم استوعال عرش، استوعال العرش، بعد سخر شمس بعد لهال خلق و الامر، هم خلق از آن اؤس، هم فرمان از آن اؤس، فرمان از آن من این یه ای پرانتزم باز کنم اینجا یه ای پرانتز مهمه ما گرفتار تفکرات صوفیانه در تفسیر قرآن کریم شدیم گرفتار شدیم واقعا این تفکراتی که آمده است قرآن رو ور رفتن با معانی قرآن گفتن آلم خلق یعنی آلم عرصوت که ملک آلم مادیات آلم امرنی، عالم آلم مجرداد این شیاخین از کجا شما ولیدنه عالم ملک. اگر یه وقتی کسی اصطلاح میکنه خب اصطلاح میگن لامو شاهده اما اگر وقتی ملک و ملکوت که میگید اگر منظور ملک و ملکوتی قرآن آمده ملک و که تو قرآن آمده این نیست که شما میگید که ملک آلم مادیات ملک و ملکوت آلم مجردات همچه چیدید؟ غلطی همه بیدهی ملکوت و کلو س... شی, كلو شی... ملکوت مبالغی ملکه مبالغی ملک این سیغی فعلوت در زبان عرب مبالغ هست یعنی این ملکو ملک نافذ ملک محیط ملک فراگیر ملک همیشگی ملک پایداد نداشت به ملکوت تبیر این حرف مزخرف که ملک یعنی عالم مادیات نم دارم, دارم ملکوت عالم مجرد بعد اگه کسی اصطلاح میخواست بگیم ایلت اصطلاح اصطلاح از فلاسفه، و آرابایی این در داریم با اصطلاح ما اختلافی نداریم, جنگی نداریم. اما اگر بخشید میگیتی قرآن این گفته این خلافه قرآن زبان عربی بودیم عربا از ملک ملکوت چه اراده میکنن در زبان عرب ملکن ملک چی ملکوت انچی یعنی فرمون روایی ملکوت یعنی فرمون روایی نافذ گسترده نامحدود خدا رو ما اینجوری میشناسیم بیادهی ملکوت میشناسیم بی دیه الملک میشناسیم تبارک الذی بیدیه الملک خدا رو ملک الناس میشناسیم قلنا و عباد الناس ملکاً تفاوت نگاه ما با نگاه یهودی یا نگاه هر سوابق سکولارستی یا نگاه لائیک یا حتی نگاه مسیحیت رایج و یهودیت رایج. چون مسیحیت و یهودیت رایج هم یک مسیحیت و یک یهودیت سکولاره ما نه، ما خدا رو حاکم فرمان روا میدنیم. یعنی میگیم که الان که ما داریم زندگی میکنیم در همه شعون زندگی ما اوست که فرمان رواست. خیلی حرف مهم خیلی نگاه مهم اگر ما همین نگاهمون رو به دنیای امروز منتقل کنیم یقین بدانید که اغلب عقلای جامعه بشر حرف ما رو می‌پذیرند. اغلب عقلای ما اینه در نهادشون این هست جهان در اداره میشه. جهان در اداره میشه. من به نبام گفتم من اینجوری باش گفتم شبیه نیوی و ابو دین شبیه گفتم چطوریه وقتی ماه رو می‌بینی قرس ماه رو پشت خورشید دیدی وقتی غروب می‌کنه یا وقتی که میشه قرص خورشید کاملا اندی واره گفتم می‌بینی چون هیچ تو قرص خورشید با قرص ما هر دو همسانند و قدر همان اندازی همان وره به با اندازی هم. همونی که برای ما دیده میشه اندازی همان گفتم خب فاصله ما تا خرشید چقدره؟ فاصله ما تا ما چقدره؟ چقدر, چقدر فاصله زیده؟ این فاصله که کی تنظیم کرده؟ که به این قشنگی اینقدر <تصفيق> این فاصله دقیق تنظیم شده که ما وقتی به قرص ما حالی وقتی هم به قرص خورشید نگاه هر دو برای ما یکنده است نه قرصید یک کاری میکنه ما یک کاری میکنه ما عقلتون کجا اخلا رو بیارید حاکم این, این مهمه عزیزان من حالا من یه توصیه میکنم شما رو به خدا مردم رو با خدا خوب آشنا خدا رو خوب برای مردم معرفی کنید ببینید اعمی ادبیاتش رو نگاه کنید ادبیات امیر المؤمنین ادبیات اعمی خدا ادبیات امام سجاد همین دعاهایی کران نشترلا ما وارد ماه رمزان میخواه میشه مثلا ماه رمضان ماه یکی از مهمترین اصولی که در این ماه به ما تعلیم میشه خودشی نزید دعای جوشن کبیر این همه خدا به ما معرفی میکنه. حمد و سلایی که امیر از خدا انجام میده چقدر خود بگی میکنه چقدر حمد و سلا حمد یعنی <متحد> مدهتی مادهون توی این دعایی کومت توی این دعای افتتاع توی این دعای افتتاع بخش عظیمی از آغاز دعای افتتاع دعای افتتاع چیه؟ تعریف خود از خدا کیه؟ خدا چونه میشنسی؟ خیلی مهم ما یکی از کمبول های ما این توی ادبیات دینی ما همینه که ما از اممیت حالی خود جدا شدیم که ادبیاتشون رو کمتر تقلید کردیم پیروی کردیم خدا رو با شناشون می خدای خهای فرمان رو با حاکم حاکمی که همه کار است همه کار است اون اخ این رو میشه بهش اشتکر کرد این میشه بهش امیدوار بود همچون خدایی رو که آدم بهش معتقد بشه اون اخ آدم رو صابر بار میاره آدم رو مقاوم بار میاره آدم رو متوازع بار میاره آدم رو خوش اخلاق بار میاره خدا رو بهشت واسه عظمل قوی انفسهم ما فی خدا رو قرب دیگه از امریکا نمیترسی دیگه از این قدرت های پومش هراسی حراسی به دلال نخواهید خیلی مسئله ایمان خلاص ما خدا رو فرمان نبای قادر متعالی میشن هستیم که ما بنده او هستیم آقا این معنی بندگی رو باید بر مردم محرمی من بنده او هستیم یه بابسته او هستیم عیال او هستیم الخلق خلقو کل امعیان الله بعد وقتی مشکلی میخواییم رو رویشن با یه مشکلی که گرفتاری گرفت داریم خدا ما بنده توییم ما بنده توییم ما بابسته به توییم راضی نشو بنده تو زلیل بشه راضی نشو بنده تو بیچاره بشه ما اینا از حدود اینا است آیا یک ایمان درستی که جامعه اگر داشته باشیم چه جامعه ای به وجود میاد خب این خدا است خدا و یعنی این فرمان نواز خدا رو فرمان نواز می‌دهیم فرمان نواهی عادل ما جامعه امن جامعه ای است که فرمان ربایش خدای متعال است. این فرمانش عین العدل است و امرت لأعدل بینکم. محمدی رسول الله صلی الله علیه و آله خدا میفرماید تو خودتو تو اینجوری معرفی کن به مردم قل آمنت به ما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم آیه 15 ای سوره شورا من معموریتم اینه اصلا اسلامی که ما میگیم یعنی این یعنی که دو عدل در نگاه اسلامی یعنی با احکام اسلام فقیه عادل در چارچوب فقه اسلامی و اختیارات فقیش اون چه امر کند عدل است معادل رو است فرمان فقیه بگیرید. نبیا به فقیه بگیم آه اگه فقیه فقیه باشه البته وقتی و طالب اصلا شرطو نداره اون چی؟ کاری به کارش امام محسوم ما نباید بیم به علی بن ابی طالب بگیم سلام آفر الله تعالی آیا علی بن ابی طالب رعایت رهایت. او صاحب اعلی رسول اکرام می از هر سوی روی این جاهلی این آمده بود گفت اعدل یا حمد از هم دو بود یعدل من آهدل نکنم بس که من مسئول آهدل من مسئول آهدل مسئول من من رو اصلا امام عصیم هم همین طور فقیه عادلم همینطور همین طور مگر اینکه الا یازوب الله رو از دست بده اما اگر این فقیه یعنی عادل شناسه عادل هست یعنی کاملا بر وفق اون چه عادل هست حکم میکنه عل رو ما باید از او یاد بگیریم نه به او یاد میدیم که عدل یا الرایت ما اگر بیا عل راयत کن این معنیه چیزی که یا عل تو نفهمیدی یا اگرم فهمیدی و عدل عمل نمی کنیم <تصفيق> خب این نگاه بعد میایم این عدل ما عدل اجتماعی یعنی جامعه رو باید در این چارچوب عدل امرتو لعا بین بینکم از اینجا می سراغ سراغ نه فقه ما خواه نخواه فقه اجتماعی یعنی فقه ما فقه جامعه داری است حتی فقه الصلاۃ ما در ضمن یک فقه جامعه داری خوب تشخیص داده میشه اصلا بنده منتقدی مگه یک فقیهی با نگاه اجتماعی به فقه نگاه نکنه به وظایف اسلامی نگاه نکنه حتی تو استنباطات فقهی فردیش هم دچار خطا خواهد شد دچار خطا میشه چون بعضی از جه ها جاها ما فهم مدن فقهیمون حتی اون چه مربوطه به فقه فرد است. بخواییم خوب بفهمیم باید بدونیم که این فقهی که این دستوری که به این فرد داده شده یه است که در مجموعه این فقه اجتماعی دستور داده شده اونه گاهی فهم ما فهم بکنه تا وقتی که ما این فهم رو همچه بگیم نه فقه فرد مسئله رو کنید، کنیدارم من یک مسئله خیلی عادی بزنم خود همین مسئله ای که آیا حکومت اقامه حکومت در زمان قیبت واجبه یا واجب نیست خب بعضی اصفاقا گفتن نه صدق واجب نیست حالا که گفتن حرامه که هستن خب نداریم کن این از کجا نشی میشینی چه تفکری که یا کسی بیاد بگید که اقامه حکومت در زمان غیبت واجب نیست خب این معلوم میشه متوجه نیست که اصلا بابا خود همه ای اسلام خودش اصلا آمده کچی خود اسلام این حکومت اسلام این امر یعنی ناهی یعنی فرمان نبائی یعنی فرمان. اصلا فقه ما چیه؟ فقه علم فرمانه علم حکمه حکم این فرمان اگر ما بگیم ما تکلیفی نسبت به جامعه نداریم حالا میخواد جامعه مسلمان باشه میخواد نباشه میخواد اجرا کنه حکام اسلام رو میخواد نکنه میخواد دوز باشه توش میخواد نباشه نمیخواد تغییر حکومت بکنه میخواد نکنه خب پس اسلام برای چیمی؟ این همه دعوای انبیا برای چی بوده؟ این همه جنگ ها، این همه خونریزی های این همه کشتر این همه زندان لفته ها زند... زندان رفتن ها همه مشکل انجا برای چی بود؟ یعنی عادت مکتب دعایش با فرآن چی بود؟ به فرآن پس نماز بخون؟ همین؟ دعوش یا دعوش با فرهان این بود که من فرمان رو که قال الملع من قوم فرعون اتذر و مكسا لیفتد في الارض ویدرک با آلهتک این يفتد في الارض ویدرک با آلهتک یعنی تو یعنی با... تو رو جامعه رو از تو میگیره تو با خدایان خودت درارا میونی با خدای خوده خدایی که اون بت‌ها یا هرچی یا... اصلا اومده جامعه رو از تو بگیره می میگه حاکم میگن داشته باشه اومده فرمان رو بایکنه کارش کینه کارش کینه همه انبیا آمدن همین در سوره شعرا همه گفتن ان دیلکم رسول امین فتق الله واطيعونی منو اطاعت کنی فرمود ما ارسلنا من رسولن الا لیطاع با اذن الله الا لیطاع حسر کرده و هر رسول روی که برست این بره فرمان دوی آمد این چه تفکر کردید که حکومت در زمان غیبت خب یعنی یعنی اسلام تعطیل اسلام تعطیل در زمان غیبت؟ آیا غیبت غیبت شخص امام است یا غیبت غیبت امامت میگه میشه امامت غیبت کنه تو جامعه امامت نمیشه غیبت کنه تو جامعه اما شخص امام بله اصلا در زمان حضور امام هم میگه امام وقتی حضور داره میگه در زمان امیر المهمنین سلام الله تعالی میگه امام تو همه کشورهای اسلامی و و تو همه مناطق جغرافی حضور داشت ما ازش به غیبت مکانی تعبیر میکنیم همیشه رسول الهی اقلن قیمت مکانی که داشتن امام توی کوفه بوده توی مدینه نائب نصر میکرده نماینده نصر تو مصر آنکه اشتر تحییل میکرده توی مثلا فرد که بغداد والی تحییل تو ایران تو منطقه جنوب ایران والی تحییل میکرد والی تعیین اینکه امام شخص امام غیبت کنه چیه فوق العاده ای نیست تا غیبت غیبت مکانی غیبت زمانیه غیبت زمانی است مکانی نیست. نیست. چه مکانی باشه چه زمانی باشه هر دو یکم چه غیبت مکانی باشه وقتی غیبت مکانی باید امامت کنه معنی امامت این است که اگر تو اگر امام تو کوفه است باید تعیین تکلیف برای مدینه بکنه باید اونجا نائب داشته باشه در غیبت زمانیش اگه تو این قطع زمانی امام می‌خوای غیبت کنی باید نایب داشته باشی باید کسی داشته باشی، کار تو انجام بده کارت که نمیشه تأثیر میشه کارت امامت زمان غیبت معنی غیبت این نیست یعنی امامت تأثیر اینایی که من تو زمان غیبت حکومت تأثیر یعنی امامت تأثیر چون امامت قدرت حکومت میگه چیه میگه ما که میگیم امیرالمومنین غصب خلافت ازش شده ما که شیعه هستیم یعنی چی غصب شده یعنی فتوا دادن از امیرالمومنین غصب شد یا نه فتواش که میونند به حضرت امیر مراجعه میکرد این لولا علی الله الیک یا لا ابقان للمعذره ليس لا ابو الحسن یعنی چی این در فتاوه علی بن نبی به رجوع میکره. علی نبی ممنوع الفتوا نبود در زمان حکومت خلفای قبل از مبنو القضاء بلکه مبنو القضاء هم نبود در قضا هم نبود همه عمومی اونی که علی ابن نبی طرف اختلافش بود با خلفایی که سر کار اومدن حاکمیت بود حکومت بود قدرت بود قدرت خیلی عالیه خیلی هم لازمه خیلی هم مقدس قدرت وقتی قدرت دست عادل باشه این یعنی این فضای تبلیغاتی که بیان میگن قدرت خیلی بده مناسب شما علما نیست سهل قدرت دستتون باشه این همون بازی های است قدرت این قدرت باید دست ما باشه یعنی قدرت باید دست آدم صالح عادل فقیه عادل شناس آمله به با عادل باشه بله قدرت باید دست این باشه نه این که قدرت ما چیزی کسیفیه این هواپرستیه این قدرت پرست. حرف چیه؟ این شما ها قدرت رو اینطوری تفسیر کردید و اینطوری بهش عمل کردی وقتی قدرت دست هواپرستان بیفته وقتی قدرت دست شهران پرستان بیفته وقتی قدرت دست انسان های بی خدا و بی آشنایی با خدا اوتوی اوتوی اوتوی. ما حرف اون اینه قدرت مال انبیاز باید دست آنها بشه. دست انسان و عالم و عادل باشه خلاص حالا این به اون مثال آمارت نگاه چه نگاهیه کسی که میگه تو جمان غیبت حکومت نباید باشه حکومت نداریم اصلا این نمیدونه که بابا این فقه ما این دین ما اصلا آمده برای همین آمده که اجامعه رو اداره کنه امرتو لععدل بینکنه این حرف ما نیست حرف خداست خدا دستور بیده برسول اکرام که اینجوری خود تو معرفی کن. قل آمنت بما انزل الله من كتاب و امرت لأعدل بينكم تو سوره نهل یه مقایسه عجیبی قرار میده بین کسی که توان و مدیریت نداره توان و حکومت نداره نمیتونه حکومت آدل رو برکا کنه با کسی که هل یستبیه و من یأمر بالعادل و هو على سراط مستقیم که یعنی رسول اکرم صلی اللہ علی وآلہ که یاسین و قرآن الحکیم این نکلم المرسلین على سراط مستقیم اصلا قرآن رسول قدارو به من یأمرو بالعادل در یک جا به در جای دیگر که من اصلا فرمان عادل میده هم هستم این قدار اینجوری اینو بیا بیاییم تو زمان غیبت آخه حکومت نم کل رایت ارزبت خدمت شبا ترفع قبله قیام القائم فصاحبها تاون هل اخیر قرآن رو فهمیدی؟ اولا این روایت روایت دیگری هست و همون کافی که معلوم بشه که مولاد از این روایت چیز؟ که درد کل رایت ضلالت ترفع مقامل قیام القائم دو حس روایت زید چه بود زید طاغوت بود با اینکه امام صادق در حقش میفرماید ان زیدن کان عالمن صدوقن کذ و كذا. این همه تحریم حسین ابن علی صاحب فخ که شهید شد قیام کرد که امام صادق میاد به اون طرف میگه سب کن اینجا در راه اونا هنوز صاحب فخ هنوز قیام نکرده بود چندین سال مانده بود تا قیام تو اینجا سبقت اینجا یه جایی است که یکی از فرزندان رسول خدا قیام میکنه اینجا شهید میشه همینجوری خب درکات نماز بود. اینا رو شما فهم میکنید یه روایتی اینجاست که این روایت تازه خود این روایت هم تفسیر رو تو خود روایت ما کل روایت طلاله تن با. الان از بودن شیعه از کوچک کانش شیعه که استن، از یه مورد مرسه نه. هم میاد نه تن توی زبون‌هایی میاد نه توی فارسی کوی که این نوع تفکر از قبل نشده گرفته از اینکه اصلا نفهمیدن که با اسلام و قرآن کریم آقای میت پیرامبری نه، اصلا مز... هم... همه دین همینه. دین اصلا برای آقای میت جواب. خود درن طولانی میشه دیگه اجزاید ما همینجور قیچی کنیم حرفمون با اینکه ما خیلی هر داریم ریز نه داریم نه هر زه ولی میخوام بگیم این اون خط سیر تفکر مقام ما از ابر ابر ابر ای امام و ما این خط سیر هست این فقه اصلی آل محمد سلامات الله سلامات الله و ما باید تلاش کنیم که ان شاء الله یکی از مهمترین مقدمات زور حضرت صلوات الله تعالی تبیین و تقدیم این فرقه به جامعه ای بشر که من گفی حرف کردم این که در روایت آمده است یکی به کتاب جدید این کتاب جدید یعنی هم فقه نو یعنی فقه پاسخگو به نیازهای آس این در نزد خیلی ها فقه نو هستم. هر دومیمیه ما تا الان نشیده بودیم این چیزی. هر چی تا رو چنین بودیم کتاب و توهم، کتاب و سرود، کتاب و کتاب و اما کتاب فقه الاقتصاد <تصفيق> اسلامی ندیدم. فقه سیاست اسلامی و فقه نظام سیاسی ندیدم. فقه امران شهری ندیده بودیم. فقه ثقافت اجتماعی یا فاعیج اجتماعی نشیده بودیم. این نکتاب جدید کتاب جدید نیست به یک معنا همه از قرآن کریم گرفته شده من تا عرضه عرضی نویس عرضه عرضهی متناسب با چی؟ با نیازهای امرومس با نیازهای رومس این فقهیست که باید دوستان البته تا اون فقه اصلی اون فقه سلنتی خود مجلوم اون رو تا کسی خوب نیاموزن اون تا نشه نمیتونه بیاد نمیتونه تو این فقه رو بیاد. استنبات این فقه برتر رو همون فقه سنتی رایجمون من اصولتون رو قوی کنی. اصول فقه, فقه قوی بشه اصول فقه قوی تا بتواهد این اصول فقه در تراز استنبات مسائل فقه اجتماعی قرار میگیره صلی اللهم علی محمد المال و سلام علیکم الله اللهم. که و الله الله فلسفه ایمان در موید فلسفه با می کنید؟ خوزی ما که می گیم فلسفه، چه تعریفی از فلسفه داریم؟ ما که می فلسفه، مراد از فلسفه فلسفی اولاست فلسفی اولا یعنی فلسفی علم حکام و وجود و مومه وجود ما یکی علم وجود داریم یعنی احکام کی بار وجود به ما وجود به عبارت به ما هو وجود یعنی وجود اختصاص اختصاص کیفی و کمی یعنی وجود به ما وجود این این زیط خدا شناسی ما این نو ال خدا شناسی چون علم خدا شناسی علم مرتبط با احکام وجود به ما وجوده. وجود ما میگیم وجود به ما وجود یا عاجب یا ممکن اگر ممکن باشد این متعلق به واجب خواهد بود. معنی حرفی واجب خواهد بود. فقیر نسبت به واجب، باعثی و واجب، یا واجب است. و باید ما یه واجب ولی وجودی داشته باشیم. اگر نداشته باشیم دیگه ما ممکن درودی نخواهیم داشت. خویی این حرف درسته؟ این فرضیه است. این زیر سختی کاری ماست. ولی از این زیر ساخت البته چیزهایی متفرع میشه. ولی اینکه فرضی که این خداواد واحد باشه احد باشه در همه چیزش باید واحد و احد باشه در همه اوصاح باشه اگه حاکمه بازم باید تنها حاکم باشه ما میتونیم این رو هم از حتی وحدت حاکمیت جهان رو که خدا تنها حاکمه این رو میتونیم بازم با همین نگاه فلسفی اثبات کنیم خلاصه فلسفه مربوطه به زیر ساخت کاره اما اگر ما از این سخص... زیر ساخت فارغ شلیم یعنی از خدای متعال و احکام مربوطه خالق و دید فلسفی نهاد برهانی کردیم که البته برای این که ما این دید فلسفی منتقدش تر بشه روشن تر و برهانی بارانی تر میشه. ایتونم از هم استفاده کنیم. چون دواری اعتباب بخش عظیمیش همین دید فلسفی رو دنبال کردن و همین دگاه فلسفی رو مساعد دنبال کردن. کنهای که مهم ما که شیع هستیم و روی صفری اهل بیت سلامت الله و صفری معارف روان شستیم ما فلسفه داریم. غیر ما فلسفه ند. امروز در جهان اسلام فرق دیگر فلسفه چرا؟ چون ما روی سفره اهل بیت نشستیم مثلا ما تو المارد اول به ما فلسفه دادن یعنی اول به ما اون براین عقلیه زیر ساخت ساز رو به ما یاد ددن مثل خود قرآنی کنیم از خود قرانی کنیم با ما برهان یاد دده برهان مربوطه به عالم وجود و عالم مبدع و معاد این نه های دور دوست و سورای و من آیاتوی اندخل خلق, خلق من کذا من آیاتهی کذا من آیاتهی کذا ام <رفت> خلق من غیر شیئن ام همون خالقون قرحانایی ازی کنان به ما یاد ما بعد علمی اطور آمدن امید گفتم سناء خدایی ولی بعدی گفتم به وضعی از آمین گفتم یکی از روشندترین ادلی امامت ما صلی الله تعالی این است که کسی غیر اینو خدا رو اینجوری نتونست توصیف. بیارید مثل علی ابن عبدالیم خدا رو اینجای توصیب کنند بیادید فتونی به صورت منبته از این از مثل ما چه علی ابن در وصم خدا از اون چه علی ابن حسین سجاد ما در وصم خدا از اونچه امام حسین ما در دعای عرفه در وصم خدا یکی یکی از این دعای عرفه یک سطح رو که در گفت آرای اعمه شما بودن های بزرگان شما باشی که چبیه این باشی خیلی خیلی دانش عظیمیست در اختیار ما این را امی ما یاد ده زیر ما یاد دهند ده. منطقی این زیر سخته ما یه رومنا داریم یک بنایی که میخواد جامعه رو نظم ببخشه این نظم اجتماعی کار فقه ماست منطقی این نظم اجتماعی رو یک جزء صفه اعتقادی مبتنی شده همونی که ما گفتیم میشه بله با. تشکر کلا شما الان اون اینکه منظور شما اینه که مورد فردی و اخلاقیه فردی نه برای جامعه هست نه از جامعه هست در حالی که رزم جامعه ان برای انسان سازی و انسان سازی و تعالی و خداست اون بازی کارخانه انسان سازی که از هر فرد جامع جامعه، نه جامعه داره فرد این رو مفصل بحث کردیم ما دو, دو شخصیت داره, داره هر فردی که وارد جامعه میشه دو شخصیت یه از شخص فردی داره شخصیت اجتماعی داره منتها گاهی میشه شخصیت فردیش در شخصیت اجتماعیش مندک میشه ولی این شخصیت فردی در قرآنی قرآن کریم قرآنی است که برای ساختن اون شخصیت اجتماعی آمده. شخصیت فردی رو میسازه تا چی؟ تا این شخصیت فردی ساختنه چی که ساخته ساختنه میشه. این هم میسازه تا اینکه چی میشه؟ تا اینکه امت درست بشه. و کتاله کنتم خیر امت اخرجت سلم هست. اونی که اخریت ناس چیه؟ اون اخریت ناس خیر امت هست. این مقالیه. قالوا لكي جعلناكم امه وسطا ل تكونوا شعارا للناس ويكون الرسول عليكم شهدا این بحثی داریم بحث مفصله که <interrupted> سیر جامعه شناسی از فرد سازی شروع میشه به خانواده سازی سپس امت از جامعه بشری این سیر چهار مرحله ای سیر تکوین اون جامعه الهی برتر است فرد ساخته میشه اول ابراهیم رو میسازند به اوم یاد و ارتلا ابراهیم ربه بکنواتن فا اتلمهن قانه الناس ایمانا معم یاد ویدفننن اسماعیل و ابراهیم یاد مزمون انطحرا بنا بجعلنه مسلمین لک و محمد صلی الله علیه و آله رو سلم می سازند بعد فاطمه رو هم میذارن علی درس بربردی و می سازن تا چه بشه تا بشه بیت محمد صلی الله علیه و آله آرژو میشه بیت ساخته میشه بعد این وقت که امت میگن این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحب میشه شیعیان هلی، شاهد درست میشه امت درست میشه شاهد امت چیه؟ جهان بود بعد چی میشه؟ وعد <مع> الله الذين امنوا منكم <مع> وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في العرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي تضاولهم يمكنن دين هرجائي مش كذلك بعده هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مش همجوي مش این چهار منحله هست، چهار اصلی و از فرد شروع میشه به اینجا همش هم انسانسازیه تا از انسان فرد شروع میشه تا به یک انسان جامعه خط میشه سوال یه بار دیگه بفهمن درسته حساب ها حرف خوبی است این سوال خوبی اتفاق که روز قیامت که میخوان حسابو کتاب کنن چجوری جوری حسابو کتاب میکنن حسابو کتاب فردی میکنن حساب حسابو کتاب اجتماعی از قرآن در مورد حسابو کتاب اجتماعی میشه خیلی واقعا یعنی حرف حرف معنی سوال خوبه ولی جای بسته زیاد داره خیلی نیاز به تفسیر داره ولی اجمالش رو عرض میکنم ما دو آیه در قرآن کریم داریم این رو بعضی خیال میکنند این دو با هم متزاد این دو جور آیه داریم یا آیه داریم که میفهند و لا يسألو خوب دقیقت کنید اینگار سوال اینشون منشه این شد که دقت کنید تو این جواب و لا عن عنذنو به المجرمون لا يسألو عن به انسان ولا جا این ما از کسی سوال نمی‌توانی چیکار دی؟ آم درسته نه؟ نیاک کرده شده که منش همین قرآن در جایی که میگه وقفوهم، انهم مسئولون ماوند لا لات راست. ولناسألن الذين أرسل إليهم ولناسألن المرسلين. چی میگه؟ آه همین جواب سوالی شد. و روز غیامات یک سوال می تو دنبال رو به کی بودی؟ امامت کی بودی؟ جزبه چه گروهی بودی؟ این سوال رو خدا می وقتی گروه مشخص شد یه گروه که مشخص شد این کارای کاری رو میذارن با خود امام تو اینم برای خاطر این که محلوم تو جایگاهش کجا میخواد باشی دیگه از گناهان و ریز و خوردش خدا سؤال نمیکنه این یه کارکار کار امامه، اینکه این که نا که در یا در جاده جامعه که ما تغییر که حساب و کتاب مردم با اهمیات ها کدوم حساب و کتاب این حساب خورد و است ما در روایت داریم اگر کسی تو اون حساب بزرگ کارش صاف بود این که تا حساب بوچک کارش آسونه بگن تو رو به علی بخشید بله تو جزر گروه هستی که حسابون تو اول گفتی من عربی هستم من شیه هستم پای کار علی ابن عربی تا حالا گناهی کردی پاد لغزید کار علی ابن همین جبران این کاستی هاست این معنی شفاعت شفع یعنی نامه عمل تو رو میگن پیوست نامه علی بن عبیتان نامه علی ابن رو میگن پیوست دارد این نامه پیوست نامه پیوست اینه یعنی سؤال سؤال اصلی سؤال اجتماعی این سؤالی که تو تو این دنیا چه گروهی رو انتخاب کردی برای پوپیروی اینکه مسئله ولایت گفته میشه ولایت ولایت ولایت ولایت میکنش خب ببرم یکی دو تو سؤال هست که بگی من فقط یک سوال میدم چون من یک پرار دیگم باید خب یکی از, از ای ای این سؤال هایی که تکرار داشته اینه که با تجربه فرمایش همزد تاریکی سنتر فرمایشات تون بحث ملکوت و امروین ها رو سرمان همیدوشتن که ممن رو می توانطویی در کتاب انسان قدرت دنیا بود ها تعی که ظاهر آاط نخ و رو تغییر به همون عادم خ به هم میکن هم هم. همینطور در ج ت چکن شر اشاره داددن به و درن همون رو نکنه نظر شما در به من نظر تکرار رو گفتم دیگه این تکرال کرات بشه ما هستیم و قرآن گریم. ما که از خودمون نباید در قرآن اولا علامه متبادله استاد و استاد ماز بزرگ باز هر چی داریم ما از این بزرگان هستند از مولانا الله را روی سر ما هستند همیشه انتهای این چیز که قرآن روشن دیگه بله ممکنه اصطلاح باشه گفتیم مولانا تو به اصطلاح حالا قنнове دیگران ممکنه اصطلاح رو به کنند طبق این اصطلاح ببین بنویسند بگویند این ناله قرآن را اگر بخوایم ما قرآن چی میگه؟ خیلی روشنه ازن جایبه دیگه و ما یشاؤو و ما کن له الخیح. سبحان الله وتعالى تعالا عمّا و جشتکون و ربکی علوم و تکنن صدورهم الحمد الله لا اله, إله الا هو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْمُولَ وَلَهُ الْحُوْمُ وَعِلَيْتُ همش لَهُ الْحُوْمِه مسئله یختار یبو که یخلق مایشا این یه کاره کم یختار یختار همین که فرمان میده او تعییم میکنن که کی چگونه باید باشه خیلی دو کار خدا داره خدا هم خالق هست هم فرمان روا این در نگاه ما و این آیات به این نظر داره. ملک هم ملک و ملکوت هم این زبان عربی دیگه شما به همه کتب لغت عرب رو جو که ملکوت یعنی چه یعنی مبالغه در ملک اینه اونت در قرآن آمده مرادی بیدهی ملکوت کل شیء و ایلیتون جامون این اینهان بیدهی الملک ایش فرقی با بیدهی الملک نداره فقط فرقش این که اینجا به خود این ملکی که خدا دارد مثل این ملک های عادی نی. یک ملک نافذ یک ملک گسترده یک ملک نامحدود یک ملک محیط یادیهم برکوتون این این تفسیر از بیشترین این بیشتر این تفسیر از ابن عربی گرفت شما متاسفانه یکی از کسانی که نقش خوبی نداشته در تحویر و تفسیر آیات کریمه قرآنی ابن عربی بوده اماده ورود کرده توی تفسیر آیات از خودش چیزایی وارد کرده بعد این تبییر شده به یک فارنگ تبیث به یک برج این مفهوم رابطه تو کلام عرفا ما بعد رابطه درم ملاصدرا و رابطه درم فلاسفه این ما هم ایم چه ادواری افتاده خیلی اگر کسی بگیم ولی مطلب اینه عرض کردم لا مصاحته بر استدلال اینکه ما یک اصطلاحی میگیم ملکوت این یعنی عالم مجرد اشکال نداره بگیم ملک یعنی عالم مادیات ملکوت عالم مجرد اشکال نداره بگیم عالم امر یعنی عالمی که این باید نیست که آلمی هست که بل فعل محزه است قوه درش نیست و آلم خلق آلمی هست که قوه درش هست بلید آلم مادیت اب ندر این استلاح اما اگه بخواب بگیم قرآن اینو گفته ده قرآن معلو اجبا و سلالله محمد و سلالله آلا محمد و سلالله